دوستان، وقتی که وارد یه اتاقی شلوغ میشید، آیا فکر میکنید که همه از شما بهترن؟ به نظر امکان پذیر نمیاد. اما کتاب فیلیپیان به ما میگه که دقیقاً باید همینطور برخورد کنیم. امروز معلم ما در مورد سندیشه یا دیدگاه مسیحیت و سه مرد با ما صحبت میکنه که به عنوان الگوی زندگی در مسیح شناخته شدن. دوستان، به دانشکده یک کتاب مقدس خوش اوم ما شروع به بررسی کل کتاب مقدس کردیم و حالا این بررسی ما رو به نامه پولس رسول به کلیسای محبوبش کلیسای فیلیپی رسونده. خوشحالیم که تصمیم گرفتید وقتتون رو به مطالعه و بررسی کلام خدا اختصاص بدید. حالا اجازه بدید به معلممون ملحق بشیم تا یکی دیگه از درس‌های کلام خدا رو شروع کنیم. در آخرین کلاس خودمون من معرفی و رؤوس مطالب بررسی خودمون از این نامه عمیق رو با شما در میون گذاشتم من دعا کردم که شما برای مطالعه عمیق این نامه اشتیاق پیدا کنید چون که ما فقط بررسی کلی از کتاب فیلیپیان رو با شما در میون می‌ذاریم در این نامه همونطور که در مطالعه قبلی خودمون یاد گرفتیم پولس مفهوم زندگی در مسیح رو با یک گفتگوی صمیمانه به فیلیپیان و کاربرد همون مفهوم رو به ما انتقال میده. یادم کسی میگفت اگه میخوایم یک نظر بزرگ رو با کسی در میون بذاریم، باید اون نظر رو مثل پوششی دور اون شخص بپیچیم. این کاریه که پولس در نامه خودش به فیلیپیان انجام میده. در آیاتی که میخونیم، میبینید که چطور پولس مفهوم زندگی در مسیح رو دور چند نفر میپیچه. آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت؟ محرک اصلی زندگی شما هست؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود داره؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال رسانید و با هم توافق فکری، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. پولوس باب دوم نامه به فیلیپیان رو اینطور آغاز میکنه. الگویی که در این نامه وجود داره همونطور که قبلا گفتم زندگی در مسیحه. نامه پولس به فیلیپیان تنها به ما تعلیم نمیده که چطور در مسیح زندگی کنیم. این تنها یک مثال بزرگ از چیزیه که معنیش زندگی در مسیحه. وقتی که نامه پولس به فیلیپیان رو میخونیم، به نظر میرسه که داریم نامه شخص دیگه ای رو میخونیم و میبینیم که این قسمت از نامه نامه محبته وقتی که این نامه محبت رو میخونیم نیمروخی از مفهوم رفاقت یا کوینونیا رو میبینیم که محبتیه که بین پولوس و کلیسای فیلیپیان وجود داره تعهد واقعی در رفاقت اونها بر این واقعیت متمرکز شده که پولوس بزرگترین مبشری هست که کلیسا تا کنون به خود دیده. در بزرگ پولوس اینه که کلام خدا رو منتشر کنه انجیل مسیح رو منتشر کنه انجیل مسیح رو موعظه کنه و ببینه در تمام جهان مخصوصا جهان غیر یهودی کلیسا میشه کلیسای فیلیپیان به پولس کمک میکنه تا این خدمت رو عملی کنه پولس به ما میگه که فیلیپیان در این خدمت با او سهیمند و به این دلیلی که فیلیپیان در قلب پولس جای دارند برای همینه که پولس انقدر فیلیپیان رو دوست داره پولس این یادداشت تشکر رو برای اونها می نویسه چون زمانی که پولس در زندان روم بود، او رو خدمت کردند. این نامه محبت می‌تونه با باب به باب به این ترتیب خلاصه بشه. باب اول شوق و فلسفه زندگی در مسیح، باب دوم بیشتر کاربردی چون به ما الگوی زندگی در مسیح رو ارائه میده. باب سوم جایزه زندگی در مسیح است که بزرگترین خواندگی از طرف خدا در مسیحه میتونید به این اراده خدا برای زندگی شما در مسیح هم بگید. و بعد باب چهاررمم نسخه ای برای زندگی در مسیح هست که میتونه تبدیل به نسخه ای برای آرامشم باشه. در باب دوم پولس به ما مثالهای عملی خواهد داد. در باب دوم پولس رسول اولا در مورد الگوی عمومی برای زندگی در مسیح با ما حرف میزنه و در نامه خودش به فیلیپیان میگه، اگه اونها الگوی زندگی در مسیح رو بفهمند، باید فروتن با محبت افتاده و صمیمی باشند وقتی که پولس به فیلیپیان تعلیم میده که افتاده باشن او فروتنی و چیزی بسیار نزدیک به فروتنی رو تعلیم میده او محبت رو تعلیم میده این تعریف پولس از فروتنی و افتادگیه که ما در موردش صحبت می کنیم هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید وقتی به اتاقی وارد می شید، و به آدم هایی که در اون اتاق نشستن نگاه میکنید آیا تمام این افراد رو از خودتون بهتر میدونید؟ اگه شما فروتن باشید من معتقدم واقعا میتونید این احساس رو داشته باشید که دیگران از شما بهترن. پولوس در اینجا در مورد خجالت و عدم اعتماد به نفس صحبت نمیکنه. حالا اگه شما افتاده دل باشید از این هم فراتر میرید شخصی که میخواد با محبت باشه باید قانون طلایی رو در زندگیش به کار ببره با دیگران، همانطور رفتار کنه که میخواد اونها با او رفتار کنند. در باب هفت آیه دوازده میگه با دیگران همانطور رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند. این خلاصه ی تورات و نوشتههای انبیا هست. با این حال پولس قانون طلایی رو به این شکل بیان میکنه. هیچ عملی را رو از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید. بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. همه ما نیازهای خودمون رو داریم. همه ما فشارها و مشکلات خودمون رو داریم. آیا شما اول از همه روی فشارها و مشکلات خودتون فکر میکنید یا شما به طور طبیعی به فشارها و مشکلات دیگران قبل از مشکلات فشارهای خودتون فکر میکنید؟ اگر افتاده باشید فکر میکنید که دیگران از شما بهتر هستند و اگه با محبت باشید به خوشی و رفاه دیگران بیشتر از خوشی و رفاه خودتون علاقه نشون میدید. هدف اصلی در اینجا همفکر بودنه، پولس میگه ما باید طوری رفتار کنیم که انگار یک ذهن و یک روح بر ما قرار داره چون بزرگترین واقعیت روحانی اینه که یک ذهن و یک روح بر شما قرار داره با این حال کلید این که همفکر باشید اینه که افتاده و با محبت باشید شاگردان مسیح در کلیسای مسیح تزاد و درگیری دارند در باب چهارم این نامه پولس مینویسه از افودیه و سینتیخی خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و سازش کنم. ظاهرا این دو خانم با هم درگیری داشتند. شاید به این دلیل که هر دوی اونها می‌خواستند از سالن اجتماعات استفاده کنند. یکی از اونها میخواست که برای تمرین گروه کور استفاده کنه و دیگری هم برای جلسه خواهران. شاگردان مسیح سوء تفاهم و ناسازگاری رو همیشه داشته. در خیلی از مواقع که این سوء به وجود میاد شما میبینید دلیل این ناسازگاری اینه که یکی از اونها مغروره و یا خودخواهه پس همونطور که پولس الگوی عمومی زندگی در مسیح رو به ما معرفی میکنه به ما میگه فروتن باشید با محبت باشید، همفکر باشید تا بتونید این ناسازگاری ها رو در کلیسا تموم کنید بعد از معرفی این حقایق پولس شروع به گفتن چند مثال میکنه مثال همیشه مهم هستند یک مثال خیلی مهمتر از هزار تا حرفه. در فیلیپیان شما فقط تعلیم ندارید بلکه مثال ها را هم دارید اول مثالی از مسیح وجود داره پولس مینویسه طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشه اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر خود را پستر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی ما فوق جمیع نام‌ها به او عطا فرمود تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است این چیزی که عیسی تعلیم داد در پادشاهی او تنها راه بزرگی کوچک شدن هست. تنها راهی که واقعا میتونی عالی باشی و مقام والایی داشته باشی اینه که اول فروتن بشی. و البته عیسی نمونه و مثال خیلی خوبی برای این موضوع است پولس به ما میگه که عیسی با خدا برابره با این حال از بهشت پایین آمد و بر روی صلیب رفت او خدا بود ولی هیچ وقت نخواست برای خودش اعتبار کسب کنه ما تمام انرژی و وقتمون رو صرف می کنیم تا برای خودمون اعتبار کسب کنیم. عیسی عمدن خودش رو بیعت اعتبار ساخت. او مثل یک انسان شد، مثل یک انسان زندگی کرد. این بزرگترین قدمی بود که او برای کوچک شدن برداشت. اگه شما واقعا درک کنید که مسیح کی بود، می بینید که مسیح تنها یک انسان نبود. او قلام انسانها شد. او انسان رو خدمت کرد. او تمام این کارها رو کرد و حتی تا به مرگ متی شد مرگ او یک مرگ معمولی نبود بلکه مرگ او مثل مرگ یک جنایتکار بود با میخایی که به دستش زدن لخت و خجالت زده بر روی صلیب برای گناه جهان مور عیسی تا به این حد خوار شد و از این جهت خدای پدر او را بسیار سرف نمود و نامی را که مافوق جمیع نامها هست به او فرمود تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند چون این برای خدا جلال میاره وقتی که عیسی از بهشت پایین اومد این امکان رو به پدر خودش داد تا او رو به عرش برین بالا ببره پولس این مثال رو میزنه تا ما معنی افتادگی و محبت رو درک کنیم بنابه به گفته پولس همونطور که مسیح با فروتنی و محبت این مرحله رو پایین میاد ما هم باید این مراحل رو طی کنیم ما باید امدن اعتبار خودمون رو از خودمون دور کنیم ما باید فکر کنیم که دیگران بهتر از ما هستند. ما نباید خود محور باشیم باید دیگران رو، مسیح رو و محبت رو مرکز زندگیمون قرار بدیم به عبارت دیگه ما باید از الگوی مسیح استفاده کنیم تا زندگی ما الگویی برای دیگران باشه تا زندگی در مسیح رو درک کنن در باب دوم پولس الگوی زندگی خودش رو معرفی میکنه او میگه: و حتی اگر لازم باشد خون من مانند شراب وقف شده روی هدیه قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و به شما شاد شادباش میگویم پولس چیزی رو که تعلیم داد و موعظه کرد، زندگی کرد. پولس تعلیم داد که پیروان مسیح باید افتاده باشند. اونها باید با محبت باشند و باید به دیگران بیشتر و بهتر از خودشون فکر کنم. پولس به پیروان مسیح تعلیم داد که در پی شادی دیگران باشید نه در پی شادی خودتون پولس به پیروان مسیح تعلیم داد که اونها باید پیرو نمونه مسیح باشند حالا پولس به ما میگه خودش وقتی که داشت اینها رو مینوشت نوشت پیرو نمونه مسیح بوده و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیه قربانی ایمان شما ریخته شود در انجام این کار خوشحالم و به شما شاد باش میگویم در عهد عتیق اونها خون قربانیهای خودشون رو بر جای می‌ریختند که کاهن خون قربانی خودش رو بر مهراب می‌ریخت به عنوان یک مربی بزرگ پولس ظاهراً به این قربانی ریختنی اشاره داره وقتی می نویسه و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیه قربانی ایمان شما ریخته شود در انجام این کار خوشحالم و به شما شاد باش میگویم پولس همچنین می‌نویسه اگه شما میخواید معنی زندگی در مسیح رو بدونید، از من پیروی کنید. همونطور که من از مسیح پیروی میکنم و در مسیح زندگی میکنم. پولس در ادامه نامه در باب دوم مثالی از تیموتاوس میزنه. من این مثال پولس رو دوست دارم. پولس مینویسه: امیدوارم که با سلاح دید دیزایی خداوند، بزودی تیموتاوس را پیش شما بفرستم تا با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. او تنها کسی هست که احساسات مرا درک میکند. و واقعاً در فکر شما هست. مشخصه که پولس در مورد تیموتاوس چی میگه؟ او میگه من شخص دیگه ای رو ندارم که واقعاً به دنبال خوشی شما باشه. این جمله العاده ای نیست؟ دیگران همه به فکر خودشون هستند. نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. شما تیموتاوس رو خوب میشناسید و میدانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت کرده است. پس امیدوارم به مجرد این که وضع من معلوم شود او را پیش شما بفرستم شاید فکر کنید که دور پولس را افرادی گرفتند که فلسفه و شوق برای زندگی در مسیح دارند نیمروخی که پولس از تیموتائوس نشون میده منو شیفته خودش میکنه و با قلب من صحبت میکنه منو همسرم دو پسر داریم پسر بزرگ ما خدمت میکنه منو همسرم معتقدیم که پسرمون مثل ایلیا هست کسی که پیشگویی کردند که قبل از ماشیه میاد من معتقدم که او شبیه بیلیگراهامه و فکر میکنیم وقتشه که بیلیگراهام بازنشسته بشه چون پسر ما میتونه جاش رو پر کنه. او حتی وقتی سه سالش بود قبل از اینکه به مدرسه بره کتاب مقدس رو علامت گذاری میکرد. در واقع او کتاب مقدس من منو علامت گذاری میکرد. این خیلی سخته که بخوایم بگیم او کدوم آیه رو علامت گذاری کرده بود چون او به صورت عمودی قسمت موعظه سر و کوه رو علامت گذاری کرده بود. هر وقت که من به اون قسمت میرم و علامتهای او رو میبینم قلب من لمس میشه. چون من پسرم رو خیلی دوست دارم بهترین ها رو برای او میخوام و نمیتونم تصور کنم که چیزی بالاتر از این باشه که پسر و پدر با هم دیگه در یک خدمت کار کنم این همون رابطه که پولوس و تیموتاوس با هم داشتن. برای پولس کار کردن با تیموتاوس مثل کار پدر و پسره که با هم انجیل رو منتشر میک من میخوام شما رو به چالش بکشم. اگه شما یک نوع ایمان هستید، آیا کسی مثل پولس رو دارید که برای سالها ایماندار بوده باشه و مثل پدر روحانی یا مادر روحانی شما باشه؟ اگه شما سالها در مسیح هستید، آیا کسی رو مثل تیموتاوس دارید تا پسر و دختر روحانی شما باشه؟ فیلسوفی که با مردان کار میکرد میگفت، اگه شما مرد جوان اخیرا توسط یک مرد مسنتر نشده باشید، به صورت روحانی و احساسی ضربه میخورید. اگه شما مرد مسن، اخیرا مرد جوانی رو تشویق نکردید، در مسئولیت خودتون کوتاهی کرده اید. من شما رو به چالش میکشم تا شاگردی کنید و کسی رو شاگرد بسازید. این نقشه خداست. در بررسی سی نامه پولس به فیلیپیان ما مثالهایی رو که پولس در باب دوم به ما میده جنبه کردیم. این مثالها زندگی کسانی بود که معنی زندگی در مسیح را برای ما بیان می کردن. ما مثالی رو که پولس از عیسی مسیح داده دیدیم و همینطور مثال زندگی خودش و زندگی تیموتاوس رو دیدیم در پایان باب دوم فیلیپیان پولس مرد پیری به نام اپافرودیتوس رو برای ما مثال می زنه. او کسی بود که هدایای فیلیپیان رو برای پولس به زندان می برد پولوس می نویسه لازم دانستم اپوفرودیتوس رو که برادر و همکار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید نزد شما بازگردانم زیرا او برای همه شما دلتنگ شده و از اینکه از بیماری او با خبر گشته اید ناراحت شده است راستش این است که او مریض و حتی مشرف به موت بود اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم فرمود مبادا این غم برقمهای دیگر من افزوده شود. اینجا ابعادی از رفاقت در بدن مسیح وجود داره. من فکر می کنم پولوس همونطور که این مرد پیر اپافرودی رو برای ما معرفی میکنه و زندگی او رو به عنوان مثال به ما میده به ما چیزی از این مراحل رفاقت رو نشون میده. پولس به فیلیپیان میگه که این مرد پیر کسی که هدایای اونها رو برای پولس به زندان می برد برادر او هست. من معتقد نیستم که، پولس تمام مردانی رو که در روی زمین بودن برادر خودش بدونه معتقدم که پولس رسول هم به این موضوع که کتاب مقدس تعلیم میده معتقد بوده که وقتی ما تولد تازه پیدا می کنیم از طرف عیسی مسیح این قدرت رو پیدا می کنیم که فرزند خدا باشیم در جملات پولس به نقل از عتیق در دوم قرنتیان با شش اینطور می خونیم اما هر که به خداوند به پیوندد روحن با او یکیست از بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است اما هر که مرتکب گناهان جنسی می شود نسبت به بدن خود گناه می کند پس تمام انسانها ها صرفا به خاطر انسان بودن و قرار داشتن در خانواده انسانی فرزند خدا نیستند و همه انسان ها لزوما برادر و خواهر ما نیستند وقتی که پولس میگه اپافرودیتوس برادر منه من معتقدم که منظور پولس اینه او در مسیح و من هم در مسیحم. ما از مسیح این قدرت و اختیار رو دریافت کردیم که عنوان کنیم ما فرزند خدا هستیم و همین باعث میشه که ما برادر بشیم. پولس همچنین میگه او همکار منه یا شریک رنجهای منه. حالا پولس این رو در مورد همه نگفته. در واقع برادران زیادی در بدن مسیح هستند اما شریک های پولوس نیستن. آموز سوالی رو در باب سه آیه سه پرسیده. آیا دو نفر بدون آنکه با هم توافق کرده باشند با هم سفر خواهند کرد من برادران زیادی رو در بدن مسیح دارم من اونها رو دوست دارم و اونها هم منو دوست دارن ولی ما با هم همگام و همکار نیستیم چون با هم توافق نداریم. ما بر چیز مشترکی تاکید نداریم ولی با هم برادریم. اگرچه ما برادریم ما شریک رنج‌های هم نیستیم کسانی در بدن مسیح وجود دارند که برادر من هستند و با من همکارند و شریک رنج های هم هستیم ما در یک تیم هستیم ما با هم در یک قسمت از تاکستان خدا کار می‌کنیم پولس وقتی اپافرودیتوس رو به عنوان همرزم من معرفی می‌کنه وارد مرحله دیگی از رفاقت میشه پولس به همه نمیگه همرزم من من به این موضوع معتقدم که از نظر پولس هر کسی که در مسیحه برادر او هست برای پولس همکار یا شریک رنج‌ها برادرانی هستند که با هم و در کنار هم در مسیح کار می‌کنند برای پولس همرازم کسی است که زندگیش را فدای همرزمی با پولس در مسیح و برای مسیح میکنه پولس به ما میگه که اپافرودیتوس زندگی خودش رو فدا کرده و خواستش اینه که زندگی خودش رو فدا کنه تا هدایای فلیپیان رو در زندان به دست پولس برسونه پولس نویسه لازم دانستم اپافرودیتوس رو که برادر و همکار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجات هم فرستاده بودید نزد شما برگردانم پس این مراحل رفاقته برادری همکاری همقطاری و همرزمی بعد پولس وقتی او را به عنوان یک پیام آور خطاب میکنه کسی که رابطه بین خادم و کلیسای فیلیپیانه به بود بالاتری از رفاقت میره او کسیه که از طرف کلیسای فلیپیان فرستاده شده تا به پولس در زندان خدمت کنه کلمه خادم در اینجا به معنی پیشخدمت هست. است اپا فرودیتوس یک نمونه بزرگی از زندگی در مسیحه اگه فلسفه و شوق ما برای زندگی در مسیح اینه که بخواهیم مسیح جلال یافته رو درون بدنهای خودمون ببینیم چه با زنده بودن و چه با مرگ اگه شوق ما برای زندگی در مسیح با این کلمات واس بشه زیرا مقصود من از زندگی مسیح هست و مردن نیز به سود من تمام می شود. بنابراین، آیا نمی نمی‌تونیم زندگی اپافرودیتوس رو الگوی بزرگی برای زندگی در مسیح به حساب بیاری به طور خلاصه در باب اول شما ایدئولوژی فلسفه شور و شوق و طرز فکری برای زندگی در مسیح دارید اما در باب دوم کاربرد اون فلسفه و شوق در زندگی مسیح رو دارید به عبارت دیگه در باب دوم شما الگوهای های برای زندگی در مسیح دارید. وقتی که باب سوم رو مطالعه می کنید پولوس یک پله بالاتر میره. در باب سوم دلیل و ارزشی برای زندگی در مسیح پیدا می کنید. در باب سوم پولس به ما در مورد تجربه تبدیل و نتایجی که اون تجربه در پیداشته داشته صحبت میکنه. پولس در اینجا در مورد تجربه تبدیلش اونطور که در کتاب اعمال نوشته شده صحبت نمیکنه. در این با پولس در مورد، نتایجی که این تجربه براش در پیدا داشته صحبت میکنه پولوس به ما میگه اگرچه من حق دارم که به این مزایا متکی باشم اگر دیگران تصور میکنند که حق دارند به امتیازات ظاهری متکی باشند من حق بیشتری دارم بعد او لیستی از تمام چیزهایی میده که زمانی برای او به عنوان افتخارات بزرگ بوده مثلا او به این واقعیت میپردازه که قبلا به جسم خودش اعتماد کرده و میگه هرچند چند را در نیز اعتماد هست، اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد، من بیشتر. روز هشتم مختون شده و از قبیله اسرائیل، از سبت بنیامین، ابرانی از ابرانیان، از جهت شریعت فریسی، از جهت غیرت جفا کننده بر کلیسا، از جهت ادالت، شریعتی و بیعیب. این مثال ها برای اینه که پولس نشون بده که افتخار او خیلی بزرگتر از چیزهایی هست که قبل از ملاقات با مسیح به اونها افتخار میکرد. اما وقتی پولس مسیح رو میبینه مینویسه اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر مسیح ضرر محسوب کردن. آریالا و بر این همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده یعنی شناختن ایسای مسیح خداوند خود زیان میدانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست دادم و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را به دست آورم و کاملا با او متحد شوم من دیگر به نیکی خود که از انجام مقررات شریعت آید می شود متکی نیستم بلکه به وسیله ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق شدم این نیکی بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می‌گیرد یگان آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درد کنم و در رنج‌های او شریک گشته، و در مرگ او هم شکل شوم. به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان نایل گردم. من نمیگویم گویم که قبلا این را به دست آوردم و یا به کمال رسیدم. بلکه آن را دنبال میکنم تا به چنگ آورم. همانطور که مسیح نیز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است. ای برادران، من ادعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ ام ولی تنها کار من این است که آن چرا در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم. و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم مستقیما به طرف هدف دوم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیله عیسی مسیح است به دست آورم پس همه ما که روهن بالغ هستیم باید چنین طرز تفکری داشته باشیم و اگر شما فکر دیگری دارید خدا این را هم به شما آشکار خواهد ساخت در هر حال ما باید مطابق حقایقی که کسب کرده ایم زندگی کنیم این باب مهمی هست که در اون پولس رسول میخواد به ما بگه چگونه اراده خدا رو درد کنیم این سوالیه که هر شبان پروتستان باید بیش از هر سؤال دیگری از خودش بپرسه خدایا از من میخای چیکار کنم ما از تجربه تبدیل پولس در اعمال رسولان متوجه میشیم که میتونیم مراده خدا رو بطلبیم و همونطور که عیسی به پولس جواب داد به ما هم جواب میده باید هر روزه از او بپرسیم خداوندا، امروز میخوای من چیکار کنم؟ آیا این حقیقت داره که خدا کاملترین، بهترین و قابل پذیرشترین اراده رو برای شما داره؟ من ایمان دارم که این حقیقت داره. آیا برای شما این امکان هست که اراده خدا رو بدونید؟ من ایمان دارم که امکان پذیره. اینجا در این باب پولس راهکار خوبی برای شناخت اراده خدا برای زندگیمون به ما میده. وقتی باب سوم رو جنبندی میکنید، میبینید که دلیل زندگی در مسیح اینه گوشش برای چیزی که مسیح به خاطر آن مرا به چنگ آورد پولس در نوشته های خودش مرتباً از اصطلاحات ورزشی استفاده میکنه اینجا کلمه ای که استفاده میکنه تأکل کردن به معنی گرفتن حریفه او معتقده که وقتی داشته در راه دمشق میرفته تا پیروان مسیح رو به مرگ بسپاره مسیح رو به چنگ میاره نمیدونم تا به حال کشتی گرفتین، و با کسی گلاویز شدین یا نه پولس تجربه تبدیل شدن خودش در راه دمشق رو به این صورت برای ما توصیف می‌کنه عیسی او رو به چنگ آورده و او بقیه زندگی خودش رو با این سؤال از عیسی قیام کرده ادامه داده تو میخوای که من چیکار کنم پولس می‌نویسه میخوام هدفی رو به چنگ بیارم که مسیح منو به خاطر اون به چنگ آورد حالا این دلیل زندگی در مسیحه فکر می‌کنید مسیح شما را به چه منظوری به چنگ آورده من با تمام قلب ایمان دارم که اگه شما از الگوی پولوس پیروی کنید و به نسخه که او برای ما در باب سوم ارائه کرده عمل کنید میتونید جواب این سوال رو پیدا کنید اول از همه ملاحظه کنید که وقتی او ایمان آورد تحولی در او به وجود اومد زندگی او دگرگون شد و از تجربه اون انقلاب درونی راه حلی پیدا کرد پولوس تصمیم گرفت تا اراده خدا رو در زندگیش پیدا کنه وقتی پولوس در مورد چیزی که او واقعا میخواست به دست بیاره با ما صحبت میکنه میگه چیزهایی که زمانی برای او زیان بود برای او نف شده پولوس میخواست به ادالت دست پیدا کنه اما نمیتونست بهش برسه وقتی دفاتر حساب او زیر و رو شد ادالت دست نیافتنی در ستون منافع پولوس قرار گرفت پولوس به دنبال ادالتی نیست که از طریق انجام یا اجرای بخشی از کارهای خوب خودش حاصل میشه پولوس به دنبال عدالتیه که خدا اون رو به او داده چون او حالا در ایمان به عیسی مسیحه این نوعی از عدالت که کتاب رومیان و کتاب قلاتیان در موردش صحبت میکنند پولس به دنبال رابطه با مسیح زنده است بعد او به دنبال قدرت پویای رستاخیز عیسی مسیح در زندگیشه چنانکه که گویی پولس داره در یک مسابقه دو شرکت میکنه و نیاز داره قوانین اون رو بدونه وقتی که پولس در مورد قوانین مسابقه دو صحبت میکنه به ما دیدگاهی میده که بتونیم اراده خدا رو برای زندگی زندگیهامون بدونیم. در پایان این باب بزرگ پولس به ما میگه اگه به یافتن اون جایزه هستیم که پولس بهش اشاره میکنه باید از همون لحظه در نوری زندگی کنیم که خدا به ما داده و تا جایی که میخواسته برای ما آشکار کرده. اگه شما در نوری زندگی کنید که خدا همین الان به شما داده بعدا اون نور بیشتری به شما خواهد داد. وقتی که در شب رانندگی میکنید، نور چراغ اتومبیلتون حدود 100 متر جلوتر رو روشن میکنه و هرچه به جلوتر حرکت میکنید همین نور 100 متر جلوتر از شما حرکت میکنه و این امکان رو به شما میده که در جاده به حرکتتون ادامه بدید. در باب سوم از نامه پولس به فیلیپیان پولس دو چیز به ما میگه. اولین چیزی که میگه در مورد هدف زندگی در مسیح که ما باید این دلیل رو به چنگ بیاریم همون دلیلی که مسیح شما رو به خاطر اون به چنگ آورده هدف از شاگردی کسی که در مسیح زندگی میکنه اینه که به طرف جلو و به سمت هدف حرکت کنه برای کسب جایزه خاندگی عظیم خدا که پولس در نامه خودش به افسوسیان اونها رو برکات روحانی در ایسای مسیح معرفی کرده این هدف که ما به خاطرش به چنگ آورده شدیم باید تماماً دنبال بشه تا اراده کامل خدا رو در زندگی هامون تجربه کنی. پولس باب سوم نامه خودش به فیلیپیان در مورد هدف زندگی در مسیح و مرحله به چنگی آوردن و تحقق اون هدف با ما صحبت می‌کنه. وقتی پولس در مورد جایزه پایان این مسابقه صحبت می‌کنه، به ما سرنخ‌هایی در مورد درک اراده خدا میده. پولس می‌نویسه من نمی گویم که قبلاً این را به دست آوردم و یا به کمال رسیدم. بلکه آن را دنبال می کنم تا به چنگ آورم. همانطور که مسیح نیست مرا به خاطر آن به چنگ آورده است. ای برادران من ادعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ آورام ولی تنها کار من این است که آنچه که پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم بعضی از ماها در مورد موضوع اولویت هامون ضعیف عمل میکنیم. ما نمیتونیم که اوولیت هامون رو طبقه بندی کنیم. خیلی از ماها میگیم، از هر کدوم از این کارها یه مقدار انجام میدم چون نمیتونیم اولویت هامون رو طبقه بندی کنیم و روی چیز خاصی تمرکز کنیم من فکر میکنم که در اینجا باید از داوود نام ببریم که مثل پولس اولویت خودش رو روی یک چیز خاص متمرکز کرده داوود در مزامیر 27 اینطور نوشته یک چیز از خداوند خواستم فقط یک چیز و آن این است که تمام دوران و عمرم در خانه خداوند باشم و زیبایی جمال او رو مشاهده کنم و درباره او تفکر نمایم پولس میگه فقط یک اولویت دارم مستقیما به طرف هدف میدوم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیله عیسی مسیح است به دست آورم آیا شما همچنین چنین ای دارید آیا شما روزی را رو که عیسی مسیح شما را به چنگ آورد به یاد دارید آیا میدونید چرا مسیح شما را به چنگ آورده یا چرا وارد زندگی شما شده؟ آیا معتقد هستید که وقتی شما مسیح رو ملاقات کردید، این ملاقات بیشتر از یک آشنایی بوده؟ آیا معتقدید که او از شما میخواد که کاری انجام بدید؟ او میخواد شما رو نجات بده و این خیلی خیلی مهمه. او میخواد که تجربه نجات و حیات ابدی رو به شما بده که این بخش خیلی مهمی از تجربه نجاته. اما بغیر از این بود از نجات، آیا باور دارید که؟ مسیح به زندگی شما وارد شده چون چیزی هست که او میخواد انجام بدی همانطور که قبلا گفتم کسانی که در یک خانواده مسیحی بزرگ شدن زندگی قبل از ایمانشون به عیسی مسیح یادشون نیست و به خاطر نمیارن که ای سیستم ارزشی مسیح وارد زندگی اونها شده. این افراد مثل پولس نیستند که تجربه روحانی تبدیلشون یادشون باشه. اما کسانی که در خانواده های مسیحی بزرگ شدن مثل بچه های خادمین شبانان یا والدین خداشناس ممکنه که در رابطه با خواندگی خدا و درک اراده او در زندگیشون تاریخی رو به خاطر داشته باشند. دکتر کنت اسکات محقق تاریخ کلیسا به ما میگه که در 2000 سال تاریخ کلیسا کسانی که با قوت در کارهای عظیم خدا مورد استفاده قرار گرفتند همیشه کسانی بودند که در خانوادههای ایماندار بزرگ شدند نه کسانی که تجربه دراماتیک مشابه تبدیل در راه دمشق رو داشتن پولس در نوشته‌های خود بر هدف کنونی نجات ما تاکید میکنه. وقتی پولس برای افسوسیان مینوشت به اونها گفت زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست این نجات نتیجه اعمال شما نیست پس هیچ دلیلی وجود نداره که کسی به خودش بباله ما اینگونه نجات پیدا کردیم بعد در افسوسیان باب دو ده پولوس پولس میگه زیرا که صنعت دست او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم من به این هدف زمان حال نجات میگم پولس بر این بعد از نجات ما تاکید میکنه در حالی که ما مایلیم بر بعد ابدی نجاتمون تاکید کنیم اینجا در فیلیپیان باب سوم پولس به ما میگه که عیسی مسیح فقط به این دلیل ما رو به چنگ نیاورده که به ما در بود ابدی نجات بده. مسیح میخواد به ما نجات ابدی بده اما او ما رو به چنگ آورده چون چیزی هست که میخواد در بود کنونی نجاتمون انجام بدیم. او از پیش کارهای خوبی رو برای ما تعیین کرده و میخواد که ما در این کارها قدم برداریم. وقتی که این اشتیاق مهم در شما پرورش پیدا کنه و سبب بشه که به او بگید خداوندا از من میخوای چیکار کنم؟ و وقتی به جایی برسید که این سؤال دقدقه شما بشه بعد از اون در فیلیپیان باب سوم پولس رسول به شما نشون میده که چطور میتونید جایزه زندگی در مسیح رو به دست بیارید پولس بهش زندگی آسمانی به وسیله ایسای مسیح میگه پولس چند دیدگاه میده که چطور میشه این جایزه رو به دست آورد که بعضی از اونها عبارتند از اینکه که اولویتتون رو, رو روی یک چیز قرار بدید تمام چیزهای قبلی رو فراموش کنید به طرف چیزهایی که در آینده هستند حرکت کنید در نوری که امروز دارید به پیش برید و در اراده امروز خدا حرکت کنید و تا جایی پیش برید که میتونید ببینید امیدوارم که خدا در پیروی از او به شما برکت بده عزیزان به نظر شما کلید اینکه بتونید اراده خدا رو کشف کنید چیه خب اون با علاقه شدید ما شروع میشه اگه ما از این شور شوق خودمون برای کشف نقشه خدا و ارادی خدا استفاده کنیم خدا اولویت رو برای ما آشکار میکنه ما مطمئنیم که این کلاس ها به شما کمک میکنه که خدا رو بهتر بشناسید و امیدواریم که تجربه شادی و آرامش اون رو همونطور که در نور کلام اون قدم برمیدارید به دست بیارید چون شما در مسیح هستید و مسیح در شما امیدواریم تا برنامه بعدی خداوند به طور مخصوص شما را برکت بده و با فیض بیکران خودش شما رو لمس کنه.